شد که مرموم شیخ قدس الله سرد بعد از این که قرط روز شیخ تحسیم رو هم بیدن یا طریقی سرد یا موضوعی بعد قطع موضوعی هم, موضوعی هم یا به نحوه طریقیت یا به نحوه سفتیت وارد بحث دیگری شدن که خب جزه مسائل و حسوب را را در آیا امارات و یا اصول قارنه با من قرد قارنش نه؟ بیانده ای این شروطه این همین تفسیم فرمون اگر باشه بله اگر موضوعی باشه به نظر طریقی باید هم قارن میشه اما اگر موضوعی باشه به نقدر صرفتی این خلاصه چون یویو هم تکرار کردیم خیلی باره که بعد از مرمون یک عده احسان رو بیش از ستا کردن چهار و پنج شهار بلکه بعدی داره هفتا و عده ایم که مردم شیخ این واضح نیست و مراد دو برسمت کردن سه برسم نیست قطع و موضوعی و ما مفلا دیروز در برسمت شاعت که با قطع نظر اشکالاتی که شده در این که دو قسمیز موضوعی انتهابن اون واقعیتی که ما در روایات داریم همینه یا تلیدیز یا موضوعی ما دیگه یا پنج یا چار قسم نداریم اون واقع خارجیش اینه و گفتیم که کلمات مرمونهایی مشروع به همینه چونیشون دو قسمش واقع نیست از میشه دو قسم کنم دو قسم ما. در بگذاریم و دار تکشتیر احسان بدون این که نکته مهنگی نگشته باشه نظر بحث امکان خیلی مصرف تمر نیست حالا که بنا شد دو هست باشه بحث رو و میکنیم های امارات یا حصول قادمه ها من قطع و قطع موضوعی و دار بحث هم به طور طریقی در دو دعاقه شادی قطعه طب به بحث طریقی که هم موضوعی. آیا خواهد فقاه شو بياراج شو يعني این رو منظور شه اما اگر ما قبول بکنیم اون واقعیتی که گفتیم در پروسه تاریخی تمام موضوع هم که با رو معبود نمی‌ذاریم از داره واقعیت نیست خنار میشه میشه خیریه دور موضوع خلاصش میشه میشه موضوعی به نمو به طریقی روز و موضوع یکی هم طریقی سه دو بسیم که کلا دو بسیم. این واجبه بحث اول و نتیجه نهایی تو بحث اول یعنی به بارد موقع ما در موارد فرس تو باران توی حدیث جانی ندارم که یقین یعنی به معنی صرفت نفسانی عقص شده باشه ساسه موضوعی صرفتی ندارم موضوع طریقی چی و اگر طریقی شد که ما هم مطبوب یا اون واضع حمله حاضر که طریقی به اصطلاح جز و موتوب واقعه جزش هم این سفته یعنی این بعد مثلا میگه محلومات خمری یکی با اشتنام هم خمر باشه و هم توهیم داشته باشیم و باشه باشه. ما دیروز یه در آخر بندس اضافه کردیم که این اینجور مواردی که در باییات وارد میشه همش نشور قطع موضوعی روشن بشنید شاید نکات دیگری باشه این توضیح ما همینده که میدنید کرده ما دعلاق نبود دیگه تختار نمیدن و اما این بحث اساسی که آیا امارات پای مقام قطع طریقی و موضوعی میشوند یا نه خب اینجا مباحثی رو ما مطرح مفرد اولا خود پای مقام شدن رو مطرح میکنیم. یعنی خود حال قطعه و موضوعی رو سانیان متعدد به مسئله اصلا خود این عبارت یا قوم و مقام یعنی چی؟ اصلا از قیام و مقام مراد چی؟ از کنم که راجب قطعه همچنین که توضیح داده شد چون تریخی و موضوعی بحث اول ما قطعه تریخی بحث این است که آیا همارات قطعه مقام قطعه تریخی میشن؟ یعنی اصول هم هم. من ضدیورتون آخر وقت بود یه مثال عرض کردم حالا دو تا مثال دیگه میکنم که این کاملا برای بله شما مطلب رو واضح میکنه ارز کردن که مثلا اگر ما آمد در عبارت یا عبایتی که ملاقی نجست نجست روشی مطلبی داشتی ملاقی نجست متنجست میشه نجست میشه ببینید ما وقتی که به واقع خارجی نگاه میکنیم چهار حالت رو میشین تصویر بکنیم دقیق رو کنیم فایده این بحث و سودیش این یه اون روی که ما یقین داریم نه چیز خب این مایه بوده یقین داریم بوده خب بلا اشکال ملابیه و گوازی دستی و مقرد اون هم نه دستی کشی این اصطلاحاً قطعه قرض پتح بشینه صورت عبر ما دیو درست کردیم در کل حضله شکریه در حوانه در حوانه قرفیه خودیه هر جا که در اونجا طریقه می کلی اگر بخبرم در مراد از, از در اونجا طریقه هر جایی در اونجا مورد دوم اگر بیانه واده شد یا خبر واده که پیش اونگلا اکتباه داشته باش. یا بیانه بیانه به اما به این که این اگر بیانه باید شد به این نجیسه چی با ملاقات بکنه نجیسه میشه این اصطلاح میگن امارات و حجرش با اصطلاح به جای خرقی این هم <تصفيق> البته چون در درسته صحابت هم تشاره کردن اما این دید اینشالله تو زیادش برد حجیت بیانه خیلی و بغلائی نیست تعبودیه یعنی دونم پر آده شهاده دادن به این موضوع خارجی اون موضوع میشه. شباشون ممنون موقعا بر حجیت وصوب اصمیناه از خبر شهاده روز تا عزیز ممکنه وصوب اصمیناه پیدا نشد با این که وصوب اصمیناه پیدا نمیشه دیگه این حجیت و حجیت این حجیت مراد اینه از اینجا حجیت تعبولی دارید مورد سروان این مایهی ای که در این زرف بود صابعا نگفت احتمال میدیم کسی او رو پاک کرده باشه خب با استثاثر به حال نجاست میکنه این سابقا نجس بود حالا نجاست اگر دست ما با او برخواد کرد حکم به نجاست پشش نکنی این ملاقیه نجاست این استثاثر اسمی که بسن استثاثر یا اصل محرد که اینشالا توزیاد چه ارسان این هم صورت ثبوت صورت شارم اگر دقرانه ام شد یا این انا ندسته یا اون انا این میگن احتیاط یا اصل غیر است. اینجا هم شما میگن وجوب اشتناب داره از هر دو اشتناب بود. این درست. ان سلام اگر دست شما با یکی برخورد کرد از خواب میگن حکم نیاتت میمیشه کرد ببینید چهار صورت شد یکی قرد شد یکی بیانه شد یکی استصحاب شد یکی احتیاض شد. متوجهید؟ در سه مورد در دو مورد واقع قطعی است حکم می‌کردند به اینکه نجس میشه ملاقاتی نجس نجس میشه در اون دو صورتش محل کلام آن رأیی که بین های ما مطرح کلا سه تاست در اون دو صورت اخیر استصحاب احتیاض از ضرر استصحاب مؤاینت وروضن اصل مورد یعنی به مقام موضوع به احراز موضوع ممکن اجل سابقاً نجس بود حالا نجس زان به اصل موافز یا تنجیلی ایند در مقابل اختیار که اصل مورد نیست به چه معنا مفاد احتیاط این است که کل واجبه نجسه مفاد اختیار است کل وارده یجب اجتناب عف فرق بکن از این اجتناب بکن از اونی که اجتناب مفاد اختیار اینه وجود اشتناب معنیش این نیست که ملاقاتشان نجس باشه وجود اشتناب هر کدام از این دو انا وجوب اشتناب داره اما این معناش این نیست که ملاقاتشان نجس باشه ملاقات کل واحده نه ملاقات هر و ملاقات هر دو نجس انما كلام در ملاقات احد الافراد در اینجا مجموعاً در کلمات اصولی سه تا راج مشه دید اول نه استثحاب نه به استثحاب حکم میکنیون ملابش نجیسه و نه به اساس احطیات دوم در استثحاب حکم میکنیم ملابش نجسه به اساس احطیات نه رأی سوم در هر دو حکم میکنیم ملابش نجسد. پس سه رأی در اینجا مطرح شده ملاوی هر دو نجیسه استثحاب و ملاقی هر دو نجس نیست احتیاط استصحاب تفصیل قاید بشیم ملاقی محل استثاب نجس مورد احتیاط نجس نیست این سه سرعیه که در این مسئله مطرح شده البته هر بسرد تو اونجوری که من میدونم در اصول قدیل ندیدم این بحث رو اما شدم تو فرم هستم در شده باشه اما از بعد شیخ همسایدگی این ها به زر مواهد اصول شده سه به زر مواهد رخصی البته راجع به احتیاط هم روی مبنای مشهور این بحث رو ما میکنی ببینید اگر ما میدونیم به اصطلاعی که از این دو انا بود مثلا خمره یا یکی از این دو انا نجسه خب اونجا در حقیقت باید گفت سه بود هست در یکی از این دو انا که اسمش اصطلاع هم احتیاط یک رعی که میگن از هر دو اجتناب بکنید که این مشهوره سیدان مشهور همینه که اصطراح هم بهش منجزیت علم اجمالی بکن یک رعی اینه که از هر دو اجتناب لازم نیست از خلید بعد از اصولی قدیم و بعضی از ها مثلکشون اینه چون رو میگن کلوشین لگه هلان هستا ترفر حرامی من ها به اینه چون به اینه آمده ما نیدیم این یکی به این لذا در هر دو از ساحل هز یا از ساحل این رأی دوم رأی میگن از یکی اجتناب بکن از یکی دیگه اشکال نداره که تقریبا یه چیزی شبیه انحلال ترکدی یا حکم بشنگن حالا اون یکی رو یا مختاری خودت انتخاب بکنی کماقی یا با خوره. از من ما نادری داریم از حقاها بسیار نادر که عمل کرده باشه به عموم القرآن کل عمر مشکلی یا کل عمل مجبور بعضی ها در اینجا عمل کردن اون هم بزنن یکی از این دو انا رو به عنوان نجد اون یکی دیگر اجازه داریم مطرح بکنیم این قرآن در بخش علم اجمالی در طرف کثیرش آمده اون گله جوزفن فکی اغنه. که میدونه که یکی از اون قنه حرامه ما مثلا دو قسمش رو کن قرآه بزن دو قسمش رو کن قرآه بزن اون روایت داره اون رو بعضی ها دا تعمیم دادن در کنی اطلاف علم اجمالی در نسیل ایجور اینجور میشه علم اجمالی منطقیز نیست شما یک طرف رو یکی رو ترف بکنم به مقدار علم خود علم خود یکی بود دیگه اون یکی دیگه رو میتونی انجام بدین حالا اون یکی یا با قرآه یا با اخت پس بنابراین این محب محب مرمی است و اینکه که در اصافه علم اشمالی قائل به وجوب احتیاط ماشی روشن شده مبانی مسئله یک مثال دیگه هم عرض میکنم یک مایه روایت داریم کسی که خمر بخوره شراب بخوره هشتاد تازیانه زده میشه خب یک مایه قطعا شراب، که تو رو قطعا خور این هشتاد تازیانه داره. دو بیانه قائل شد که این شرابه کسی اونو خورد بعد از بیام بیانه اونم هشتاد تازیانه دارد این خود رو و عمالان. سه این مایه صابقا شراب بود حالا این مدتی گذاشته بعد این سرکه شده تبدیل شده به سرکه بعد هم این هنوز شرابه خب استثاب بقای خمریت می‌کنی. اگر بعد از استثاب بقای خمریت کسی اون رو بخوره باز هم حد جایی میشه بردیس این مورد استثاب چهار میدونیم یکی از این دو مایه شرابه خب دقت کنیم هر دوش نه یکی شرابه فقط و اینه که اگر کسی یکیش خورد اجتناب از هر دو واجبه خوب دقت کنیم اجتناب از هر دو واجبه لیکن اگر کسی یکیش خورد حد برش جاری نمیشه چون حد بر شاره و خمره و این مهرد نشده شاره هم. خمره شد نکته پنده لذا آمدن گفتن که در جایی که قصد و نحوه اگر قرص ادافه کنید یا قیانه باشه اماره باشه یا یکی از اصول تنظیری مثل ما نحنوی استثاب اصول تنظیری در کلمات ارنامی که الان متعرضش اینچین اجمال به معنای اصولی که نظر به احراز موضوع باشه مثلا میگه لاتنگازه یعنی نوش شد که انما نظر بیدیم داره این سابقا شراب بود حالا هم شراب اون داتن بود که هنوز هم شراب و اما اگر اصل غیر تنظیلی باشه یعنی چه اصل غیر تنظیلی مثل همین احتیاط گفتم اگر احتیاط باشه شما وجوب اجتناب دارید اما حد هم جای نمیشه اصل غیر مهرد قای مقام علم یا اماره نمیشه این راجعه به این مطلب از کردیم این رو بعدها علمایی که بعدش شیخ هم عبارت شیخ شیخ اول جوان اول مطلب چیزی چیز فرمودن بعد عوض کردن هم علمایی که از شیخ آمدن عباراتشون مختلفه مثلا شیخ اولا نشد ولی اصول عملیه بعد کلمه بعد رو بهش اضافه کرده که توزیادش رو زده شادیه به ایشون مرومه میگه نه صحیحه که که اصول عملیه مطلقا اونا آقای مقام علم میشن. باز آقایون بعضی ها مثلا که عبارت توی. عبارتی که مرمون آقایون چه نگرد؟ این عبارت ایکیتی بخونی تو عبارتی که آقایون در تغییرات دارن اولش مشعر کلیه و اصول آخر, آخر عبارتش مشعر فرق بودن به این اصول تنزیلی و ببیتنزیلی حالا نقطه فنی بحث چیه؟ من یواش شواش نقطه فنیه بحث رو خدمتون ارز رو کنم ترها اولیه حالا اون ترها اولیش بعد که شروع کنیم به تحقیل ترها اولیه اینه مفاد اصول عملیه مفاد کشف نیست بعد خودش طریقیتش ذاتیز و اولان بگه اما امارات هم چون جنبه کشف از واقع دارن حالا مثلا شارعه این کشف شده تام برای جده پس شما یه واقع میگونی مثلا ارز داری شراقه بیانه قائم شد شراب اما اصول عملیه چه این اصول عملیه تنزیلی باشه یا به تنزیلی اصول عملیه جریع عملیست و زیفه عملیست توش ترش نداره. یعنی در مثل ها میگه تو برنامه تو تر تر تر بکن که این شرابه نهی که واقعا شراب شما ما این شراب این سابقا شراب بود مثلا شخصی با وزو بود حالا چورتی زده یعنی چورت واقعی شد یا نشد این حالت با قبلش عوض شد یا اون مثالی که کرارن تکرار کردن خانمیست که این خونه هیچ شده اما هنوز قص نکرده خب این غیر از اون اول خونه هیف بود حالا خونه نیست استثاب قرمت رد استثاب مفادش جریع اولیست احتیاطم مفادش جریع اولیست درست شده اگر درست است که شد هم اما تمام موضوعه به جزء الموضوع یعنی اگه تنظیری شده یا از یعنی بوده اما تمام ملاکی نیست یعنی چی در فقط فقط به اگر باشه امر تکلیمی نیست کاوشکیه در هر نمیخواد ملاک بشه و اگر فرصم مثلا در استثاب هم شما مثل خبر واحد یا بیانه هر دو اماره مویدی حالا از ملاف باشه ملاف شکاره هست اینو از اینا از اجازه بپنیم اولا سره اولیه اینو میگن استثاب با احتیاط از یک مغوله هست هر دو جریه عملیه خوب دقت بکنم ازتماعی بپنیم یک ازده میگن چون هر دو جریه عملی هست پس کاشفیت نداره پس قائم علم میشه یک اذه میگن چون جریه عملیه جریه عملی در علم هست پس قائم مقام علم میشه دکتر فاندروس یعنی هر دو یک مطلبی رو اعتراض میکنن که در اصول جریه عملی است وظیفه عملی است این میگه چون وظیفه عملی است کاشفیت نداره پس قامقام علم نمیشه چه استثنا اون میگه نه چون جریه عملی است ما در علم هم عملی داریم چون یکی از خصایص علم ما وقتی انطباق کردیم جریه عملی بر روی علم می کنیم خب چون در علم ما جریه عملی داریم و انجام که جریه عملی هست پس مقامش میشه پس اون نقطه طرح اولیه بحث هنوز روشن شد و بعد یا رو به تخیل مسئله هر اولیه بعد ما قبول داریم که در اصول جریه عملی است اینم مثلا یه دنگه جریه عملی چون کاشفیت توش نیست خواهد مقام با نمیشه یه دنگه جریع عملی کاشفیت توش نیست لیکن همون اثر قط فرق ندار با قرد و حالا من بخوام اونجای یک چوزی مختصر ارزو کنم اینا برای قط سه تا اثر میبینم یکی یک صفت نفسانیست دو کاشفیت داره سه جریع عملی. اف اینجوری دیگه. یکی سفر نستانی یکی کاشفیت داره از واقعه. و یکی هم جریع عملی. میگر اصول در جریع عملی با قرد شدید کرد. امارات هم در کاشفیت با قرد شدید کرد. پس فرد یک سفت خاص خودش داره که یک سفت خاص در دو کاشفیت داره از اینجا با امارات شریک میشه. سه جریع عملی داره از اینجا با اصول شریف میشه از جریع عملی با اصول شریف میشه در نتیجه اصول جای قط میشه خلاصه ترگی اینه پس ترگی که شده اجمالشی این مطلب رو مرهوم نایمی هم قدس الله نفسه داره البته نهایتا تفسیر قاعده اما این سه مرحله رو ایشون در تغییراتشون علامه پرتواظ که اثرش آمد علاوه که ایشون در اول بحثش فرق ببین حفظ تنزیلی و غیر تنزیلی میگذاره وقت بر این حالا این در این جده شماری 3 از فواعد اصول مرحوم نایمی صفحه 15 به بعد ایشون علاوه که ایشون نوشه ولذا قید شیخ به بعض اصول که تمام اصول نه لیکن این قید شیخ نه من توسیم که خارجانه ارز کرده شیخ ابتدائن تغییر نکرد بعد در اواخر تغییر کردن بعد ایشون بیفرمان اصول تنزیلی اونهایی هستن متکفله لتنزیل المعددان منزلت الواقع اصول تنزیلی اصولی هستن که متکفله این نکته بعد بله. به حیث و یکون و مجعول و فیه ها البناه و ال... البناه العملی علا عهد طرف شک علا انهو هب الواقع و الگاه و طرف الاخر اون طرف دیگه رو الگاه الگاه واقعی میگه واقع چاپ شده آن خیلی مولانا قدیده جمه غلط شد و الگاه طرف الاخر طرف دیگه رو از بین میرن مثل استثها اصول تحبیلی رو اینا مثال میزنه استثها و اصالت و صحب و قاعده تجاوز و ان صلى لالك من الاصول المحرره محرره البته اساس صحت ایشون قاضی تجاوز مثال میجره اسات صحت ظاهرا مراد ایشون از اسات صحت اسات غیر فی فعل باشه مشهور و اسات سهه هم اینه که فعل هم در شریه و یک اسات صحت هم فی فعل نفس که گویا میگن قاضی تجاوز از این که قاضی تجاوز رو اوبرده به میگن معلوم میشه مرادشان از اساس و اینه و به عبارت محرام یک که اساس صحتی صحه فعل غیب داریم مکنم کلونی کار عزیز ساده شده هم به وقتایی شده یک فعل یک فعل این اساس صحتی فعل غیب یک اساس صحتی فعل نس داریم این اساس صحتی صحه پی فعل نس اینطور مشروع شده اگر بعد عمل باشه و شک که در صحت عمل باشه اسمش قادر فراق رو داشته که بعد از نماز دارم شک میکنه نماز ب اما اگر در هین عمل باشه و تجاوز از محل کرده و شک در وجود باشه اسمش قاعده تجاوز بودشن ایسی که در حال سجود شک در رکوع بکنید و به هر دقاره فراغ و تجاوز گاه یه اساس و صحیب بی پیل نفس و هر حال چونشو اساس و در مقابل قاعد تجاوز رده این نقطرم عرض بکنم اصلا اصلا تا صحیحی فیل و غیر دلیل روشنی نداره دلیل همین عبادت زر فیلی اخیی که در محل خودش همین شده توضیح خواهیم داره این دلیل روشنی نداره و علا تغییر این که این اصلا زر فیلی اخیی که احسن احساب داشته خوب دخلت بکنه اینجا به اصول غیر محرزت نجا به اصول محرزت که شما بردن در پایز تجاوز شما چی میگید در سجده که شکل میکنی؟ شانه میگه بلا خبره کردی میگه تو روکو رو انجام دادی این اسم باید تجاوز اما در اساط سهل گرد زعف علاقی که اون کار خراب نکرده کار حرام انجام نداده اما اینکه درست عمل رو انجام داده مطابق این رو حکم انجام داده یا نداده حکم میکنیم؟ کنی وقت حکم نکنی گناه نکرده کار بد نکرده اون کردی؟ این که بگیم زعفه الاخی که علا این به معنای اصل غیر غیرمهرزه حالا من زوابت اصل مهرز و غیر مهرز و خیدناس نعرض می این به همین مقدار اتفاق کرد اون وقت مرحوم در صفحه 16 فرمودن از صفات حقیقی ذات اضافه است سه جهت در شن. جهت یک جهت و کونی هستفتان به نفس عالم ایک سفر خاصی در حالی دو جهت و اضافت سوره لزه سوره اضافه سوره یعنی کاشف از واقع سه جهت و بنا و جلی و عملی علاوه خلال علم جهت و بنا اون وقتیشون اینطور میگن در علم سه جهت در امارات دو جهت کاشفیت و جلی عملی و در باب طرق و امارات تغییرشان جهت ثانیی هست و اما باب اصول تنزیلی جهت ثالثه از علم که جری عملی و بنا عملی باشه مندون ان یکونه هناز جهت تشمن و تریخیت بعد دیگه وقت حکومت امارات بر اصول شده و یک مناسبتی هم وارد بحث حکومت ظاهری و واقعی شده که چون این بحث اول تاروزون ترس هست ما به مقدار این اشاراتی این بحثه های ناینی رو باز میکنیم این راجع به خلاصه کلام مرموم ناینی روشت شد, شد پس ایشان سه مرحله گرفتن البته ارز کردن مرموم آزیا هم علامه فتقرید نشد مقالات رو نگاه میکنم علامه فتقرید ایشون هم به همه سه مرحله ناینی نظر دارن یکی صفتیت یکی کاشفیت و یکی جریه عملی و آی خویی هم قدس الله نفسه این تأمیر رو مرمون ناینی ندارن اما نتیجه همین مطالب ایشان رو تقریبا ترمودن نتیجه مطلب ایشان و عراجه به بعضی مطالب در کلمات های نکاتی هست که ایشارا بعد متعرض میشین امروزی میاده راشین آی بجنوزی ما در درستیشان که می رسیم مرموم های بجنوزی قدرت الله سره ایشون از مرموم نایین مطلب بی کنه با اینکه در تقریر آمد فهم میکنه اقتماعا این مطلب آی بجنوزی رو مثلا یا سماعا از مرموم نایینی شدن یا در دوره های اخیر مرموم نایینی فهمدن من الان صحت و صحب ما سر رو این مطلب بی که الان نرموم هم خدای بجنوزی در منت معروای لاین هم اینجا نایوردن، آرو خویی هم نایوردن. لیکن خب بنده از خدا گواهی شدن، یالا درشینه به خودمون که شک ندارم. اون تقریری رو که معروای بوجه و عرض کردم، علمای ما در اینجا انصافاً عباراتشون خالی از تضریش نیست. مثلا اباظ عازیا در نهایی در تقریارشون، اولش مثلا میگن اصول کلا رو مقام قضا سری میشه. آخرش با تفسیر بین موهرز و غیر موهرز می‌ذارن. ایشون هم در اینجا میگن ما فقط موخرد رو میگیم بعد میگن جریا عملی؟ چونی ابرار هم که خالی از ابرهامی است. به هر حال مرحوم استاد و از قول مرکمان اینایی از دست الله صلی الله علیه این طور که اگر انسان این پیدا بکنه چهار صفت رو یکی سه جهت نمیشه. چهار جهت برای انسان پیدا میشه. یک یک صفت خاصه که بدن در زن نیست. صفت خاصی است که حالی نورانیه، صفتی سلاح بنده در فرص این رنگ میخواییم بشیدیم یه رنگش مثلا سبیهه به خلاف زن مثلا یا خوف خوف و زن رنگش خاطستریه مثلا این با مثال اگر میخواییم رنگ بریم پس ما یک سفت خاص نفسانی پیدا داریم جهت دوم که در اینجا هم ایشون بیان کردن کاشفیت یعنی این سفر یک ارتباط با واقع داره واقع رو برای شما کشف میکنه این هم جهت است. که در علم هست جهت سوم در علم هست که ایشون در اینجا من روشن. و اون امکشاف واقع و از انصافت اگر این مطلبان مرمونه اینی باشید که ما از وستاتین خیلی در احتمالان اواخر اون مرمونه اینی جمجور کنه افکارشون رو به این صورت در دارودن انصافت در مجموعه کلماتی که در اینجا اعلام نوشتن مراجعه کنید این تغییر رو که من در از, از ما مرحله سه سوم جهت سوم در قرد انکشاب الواقع یعنی به عبارز اون واقع دیده میشه یکی اینکه که این راه داره به واقع یکی اینکه که واقع برای اون کشیده. این غیر از کاشفیت هر پس جهت اول صفت خاصه جهت دوم کاشفیت این قرد از خارجه جهت سوم بوم انکشاب الواقع برای این شخصه جهت شما رو جرری عملی بر به همین این واقعی که ترک شده پسا بلانسه اگر دید اینجای چیزی هست میگه این ریسمانه از اون نمیکرد اون و شبیه اون م مار, مار خراب میکنه. وقتی علم پیدا کرد خینف های فهمید ریسمان یک چیز ماریه چیزه از ما خراب میکنه از ریسمان خراب میکنه این اصطلاح بشید این جریه عملی اون ر مع اینجور تغییر فر میدن ناقل ابو الاستاذ رحم الله خلاصش این که در خطی چهار جهت هست در امارات سه جهت هست یکی کاشفیت هست یکی انکشاف الواقع به هست به هست یکی از جری عملی است و در اصول تنزیلی دو تا هست این تقریبا این اصول تنزیلی و هیتن. این خیلی فرق لطیفیه در اصول تنزیلی نکته اصول تنزیری اینه که توش انکشاف الواقع هست اما کاشف نیست شاید مقارد این آقا آره که بزرگوار و مح... مرادشون این بوده اون آقایی که گفته مطلب رو کاشف ناقه هست مرادش این بوده ببینید ولی ازاد در عدله لسان و اصول پنزیلی فعن نتیب کن علای یقین من وضوع افری منکشف رو میگه وضوع رو میگه لا تنغازه یقینه به شر میگه روایت اول زراره میگه چورت هم زد. امام میگه لا تنغازه نکه کنت علا یقین من وضوعه خود دقت بکنه یعنی که اما اون منکشف رو که وضوعه هنوز میدید خوبه کاشف نیست در اینجا اما منکشف که خود وضوعه هست مثلا در اون روایت خواهده تجاوز میگه آمن در حال سجده شک کردم در رو امام می فرند امز فی بلا قدرک کرد بلا قدرک اون شوکاش رو شو به سرمی شد مراد اونام تشرف چجوری ظاهر میشه کارشد نخ نه همینجا این ظهور انکشاف ابتداییه ما این کلام به دایره اضافه کردیم این ابدار جائله این منتخب ثبوتش ابداریه ببینید دقت بکنید یه دفعه میگه این ثلاثه این چی اگر ما باشه این تحبیر این میشه اصل تنظیری محیاری بود حالا من محیار سوزی بیشتر که بیه شده هست اگر منکشف بود کاشف نبود این میشه اصل تنظیری و نصاب دخلی میگه بلا قدرکت بلا قدرکت این چی؟ یعنی اون منکشف هست سکو هست اگر میگفت امزه دی سلاسیه میگفتین غیر تنزیلی حالا که گفت قدرکت میگره اصل تنزیلی قاعده ی ببینی شما در قاعده ی تصرف شخص رو میبینی از تصرف شخص حکم میکنی می کشه ببینی می اینجا میشه اصل تنزیلی از تصرف حکم میبینی از کرا این مقدر رو مرموم استادونای بوجنه از قول نایین ها که نیدونی فکر کنم تو درس بود. نه، اونی که نوشتن، نه مرجو هاشون. نه, نه خود ایشون، نه خداشون. خیلی عجیبه. من به مونتاژ مراجعه کردم، خودشان تو مونتاژ هم این صحنه اما من در درس ایشون دیدم غلط و خیلی تحلیل لطیفه. در تمام این روشهایی که اومده، این تحلیل رو نهارم. از همه این تحلیل‌ها لطیف‌تره. پس در علم چهار جهت هست. صفتیه، کاشفیه، انکشاف الواقع و الکیول عملی. چهار جهت رو کلا چی تحلیلی که ما میتونیم در پیش بگیریم. از جهات دیگر هم من وارد در این جهات دیگه دیگر بشه اضافه کرد. بعضی‌ها جهات دیگه دیگر... اینا... این این نکته نداره و من نمیخوام وارد بله تحلیل خصوصیه یعنی برای... پس بنابراین ما در قدر چهار تا داریم در امارات سه جهت داریم در اصول تنظیمی دو جهت داریم. در اصول غیر تنزیلی یک داری. دارید پس بنابراین اگر قصد تیزه کردین خمره و خود یک جعلیه، هم بیانه آمد که خمره و خود یک جعلیه. هم استثاب که آمد یک جهب چون چرا استثاب تنزیلیه چون استثاب میگه این خمره مثل بلا قدرکت لا تنگذید فعل نکه کن تا علا من وضوعه خوب دفت بکنی یعنی من دارم وضوع میبینم تو هنوز زوزو داری نمیگه کاشف هر. این سر اینه که استثاب را آن بست یعنی که آجاز اماراض جز اصول اگر این تحریر مرمون هایی درست باشه استثاب جز اصوله لطه بگیر معنا چرا شایدش آمده چرا این کشاف آمده کاشفی زیاده داره این طور میشه اشکشات بیاد کاشف نیاد مثل در ماهویه امارات که تو اصول دید، استتاوجو امارات میگن تا مطلع بشین. الان بجین تو امارات آمدن تفصیل قائل شدن که امارات گه کج داره یا نه. یعنی در حقیقت همین نکته رو که استادشون فرمیدن در اشکشا بوده. تعجبشان ایشون نقل نکردم من واقعا متعیرم. نگاه میکردم الان تو نموش اندر خوندن روازی نایینی رو در ثواب تکلیف رس به میکنه. مرحوم آزیاب در تحلیقش روی کلمات ایشان داره همین جهت رو میگه واضح آزیاب همین سه جهت رو ایشون بررسی کن لیکن از کردن نهر دقیقش شد که مرحوم استاد نهر چهار به خیلی دقیقه این کلام فوق العاده دقیقه پس یک سفتیت داره دو کاشفیت داره سه انکشاف رو واقع داره چهار جریع عملی داره پس قد امارات و اصول تنزیلی یک حکمی داره، اصول غیر تنزیلی حکمی دیگه داره مقام قصد نخواهد قصد طریقی این دوتا رو هر دور ابدال میدهید سرقشینه مرحوم استاد واقعی گرفتن و رضا رضا میگه که نهر اماره. چون اینکشاف هست اماره قرارش شده در درد اینکشافش واقعی هست در اینجه اماره رسال الله آره ان نه الله رفت به نهر